اصلا اساس این متدولوژی خودتون رو بفرمایید و ازش دفاع بکنید خواهش می‌کنم درود به شما آقای فیروزی و شنوندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن بله این مطلبی که فرمودین من اون مطلبشو میارم فقط نکته اینه که توی این پژوهش که انجام شده متوجه شدن که اینو این یافته رو در ارومیه نخستین قنات جهان می‌دونن به این صورت که میگن از اینجا به صورت ابتدایی مثل استخراج می شده کم کم این رگر و کندن رفتن جلو بعد متوجه شدن که از همون جوبی که حالتی که کندن رفتن جلو آب جاری شده و میاد بیرون از دل کوه و بعد از این آب هم اون آدم ها اون زمان استفاده می کنن این رو نخواستین قنات جهان هم می دونن در باری کشاورزی هم همین الان دوستان برنج استوجو کنن اسرائیل الان مدعی شده که کشاورزی جهان رو ما شروع کردیم. هم سند 23 هزار سالش. دارن قشنگ مستندش میکنن یعنی ابری ها 23 هزار سالی بله میگن ما بودیم می تبقیه تاریخ میگن در سرزمین کنان بله بله بله بله. این اتفاق افتاد بله بله اصلا انسان های اولیه بله, بله. سند 23 هزار سه سه سال. ساله دارن برای کشاورزی میدن حالا درباره این بحث سبکی که گفتین من یاد فرمایش دکتر استانی افتادم که اون نشستای آخر تاکید میکردن که ما متاسفانه روش تحقیقی پ دنبال نمی کنیم با یک روش تحقیق درستی بحث‌ها رو دنبال نمی کنیم خب این درست بود اتفاقا ما امروزم هم با دکتر اسنیک مطلبی داشتیم صحبت می‌کردیم خیلی یاده یاد آهای فیروزی رو کردیم این که خب ما می دونیم آقای فیروزی از استثناءهای عصر معاصر ما هستن من دکتر صبح... نه ما امروز شما بنده رو می‌شناسین آقای مؤبی هم می‌شناسن من با هیچ کس تعارف ندارم طرف چیزی بارش نباشه تو روش میگم استثنای اصل ما هم باشه باش میگم باش اختلاف نظرم داشته باشم میگم نداشته باشم و میگم من اهل تعارف نیستم. به هر حال بله های فیروزی یک نکته خیلی درستی رو اشاره کردن که بنده هم تاکید می‌کنه این اینکه ما در حال حاضر در ایران برنامه‌ای برای ایران شناسی هیچ برنامه مدون و مشخصی برای ایران شناسی برای تعیین مرز میان تاریخ و پیش از تاریخ و همچنین است، چگونگی استفاده از اسناد ملی و پژوهش‌های های علمی نو نداریم نداریم یعنی میگن مصر شناسی سبک داره درست میگن بنده هم در دنبالی فرمایشون میگم که ما سبک مدون و چارچوب داره ایران شناسی نداریم دست کم الان که اینجا نشستیم نداریم امیدواریم سالهای آینده اینو دارا بشیم من یک بار دیگه یاد آوری می کنم من اول اون نشست سی و که بود کنم یا سی و بود تلاش کردم که یک پجوهش انسان شناسی نوین ارائه بدم از نشانه هایی که سکونت ساپینس ها رو در زاگ نشون میده. ده. یعنی این ربطی خیلی به این بحث من هز. اونو گفتم بعد بحث از تطبیق شواهد و اسناد کردم که ما وقتی یه سندی ارائه میدیم ببینیم پوپر میگه که شما برای نقض نظریتون فقط به یک مورد نقض نیاز دارید برای که نظریتون نقض بشه کلا فقط به یک مورد نقض نیاز دارید یعنی دیگه اصلا کلک نظریتون کنده است بنده ارزم این بود که خیلی خوب این یافته ای انسان شناسی رو حالا ما با اسناد ملیمون دونه به دونه مطابقت بدیم، ببینیم این تطبیق میخونه بله. که خب اصلا بس همینه دیگه هم داده ها همین میشه دیگه بعد بحاستم ارز کنم که تطبیق با تعمیم تفاوت داره شما نظرتونو رو به بوته نقد اسناد میذارین که ببینید از بالاخره بیرون میاد سعی و سالم میانه هر جاش که به قول پوپر یه مورد نصف کافیه که اون نظریه باد بریم اشکالش رو رفت کنیم اما تعمیم یه چیز دیگه است ببینید مثلا سخت ما بتونیم نارمر رو با هوشنگ مثلا تعمین بدیم بگیم چون نارمر اینجوری بوده پس هوشنگ هم باید همینجوری باشه ببینید شاید هوشنگ شبیه نارمر باشه اما این باید اثبات بشه این با تعمیم دادن شدنی نیست حالا دنبال اون بس که شما فرمودین ما ادامه بدیم ببینید اونجا من میخواستم نشسته بیشتر یک نکته رو بگم این که در اسناد خب مشخصه کیومرث پیش از ایرج ایرج در اسناد ملی ما نشان دهنده آغاز یعنی بعد ایرج ما نام ایران رو تو اسناد ببینیم دیگه و از دوامان منو شهرم ایران شهر رو میبینیم ما پیش از اون در هیچ سندی نمیبینیم که کی از کیومرث از ترمورس به نام شاه ایران یا مثلا یک چیزی درباره ایران نام برده اصلا پیش از ایرج دروری که اینا یک کار ایران بوده، حالا گیریم شاه بودن. مثلا بودن. اما گفتن حالا آقای فیوزی هم چه ادعایی نکردن که حتما شاه ایران بودن. اما هنوز ما میدونیم که از بعد ایرج جمعیت ایرانی هویت این نام رو میگیره و بعد از منوچهر هم میره اثر. نکته دیگه اینی که من گفتم که در شاهنامه آمده که گذشته برو سالیان 6000 گریدون که باشه گریدون چی بود گریدون برتر نیاید شما یه چیز این وسطش هم هست آره اون دنبالش معنیش اینه که مثل دوم معنیش اینه که یعنی آقا اگه ازی بیشتر نباشه دیگه کمتر نیست. نیست آره اون معنی اون مثل اینه حالا من اینجا دارم گریدون که برتر نیاید شما این دنبالشه یعنی دست کم زمان گشتاس با میگه حالا از زمان اسناد از زمان خودش هر جور بگیریم میگه دستکم 6000 سال حالا مثلا اگه طبق فرضیه که عیفیروزی میدن اگر مثلا کیومرس 600 700 سالشم میذار 800 سال چقدر پیش از گشتاس بود حالا فوقش یه چیزم در مورد کیومرس میگفتی که مثلا, مثلا گذاشته گذشته سالیان 7000 درصدی سال که ما میبینیم که درباره کیومرس همون مثل معروف میگه که ندارد که روزگاران بیاد. میگه گشتاس بود دقیق تاریخ میده تقریبا حالا میگه یکم شاید بیشتر اما یا مثلا زمانی که درباره عرض کردم درباره اون کوسه باستانی کوش باستانی که من احتمال میدم بهشت عدن باشه نظر میده و میگه که این اینجوری بوده دنبالش میگه که جز این نیز نامش ندانی همین میگه من اینجا به شما گفتم که یه کوسی هست جایی به نام کوس هست اما فقط همین نام من میدونم چیه دیگه چیزی دیگه ازش نمید یعنی ببینیم تو این اسنادی که درست فردوسی بوده اگر احتمالا چیزی دقیقی مثل گشتاس میدونسته رو تو سند ما باید مشاهده کنیم حالا درباره اینی که بعد درست میگن شاهنامه محوری منم مخالفم کاملا و همه اسناد باید بررسی بر بشن اما من نمیدونم یکم سخته بتونیم بگیم که این سند میشه ها. بگیم جای گشتاش بش درسته جای کیومرثش غلطه حالا من بعد که بگم اسناد چه چجوری به دست رسید یه بار دیگه اینجا نشاریم بگیم می‌بینیم که برای اینکه رد کنیم یعنی ما نمی‌تونیم تشخیص بدیم فردوسی کجاست هوشنگو رو رو درست گفته مثلا کیکاوسو علت گفته این خیلی کار ادعایی خیلی بزرگی یعنی ما هزاران 100 تا سند باید و وسط که بگیم بله ببینیم جای کیکاوسو درست همین گفته دقیقاً هر جایی که همخوان باشه ما می‌تونیم مثلا مطمئن یا نزدیک بشیم ولی وقتی جایی که تنها گفته و دیگران سکوت کردن یک فرضیه میشه و جایی که یک چیزی گفته و دیگران چند چیزی دیگر گفته ما باید شک کنم بله منم ارز میکنم که کار, خی... کار خیلی بزرگیه این ادعا یعنی ما خیلی باید کار کنیم تا بتوییم ثابت کنیم اینجاش خیلی جالب نیست اونجاش حالا نه نف... شاهنامه هر سندی نکته دیگه من مدام تو نشسته خیلی قبل هم میشنیدم در یک دوری در ایران از این ایه ها زیاد داشتیم کیسانیه راوندیه شعوبیه او تا دلتون بخواد از اینا داشتیم خود مثلا خوارج شاید 15 تا از این ایه ها داشتن خب اگه ما بگیم که اون چی که درباره گفته شده داره کیومرسیه گفته خب بعد دون میتونیم بگیم در اونجا در بله هوشنگی هم گفته شده حتما هوشنگی گفتهن مثلا چه در بله فردونی حتما فردونی ساختهن بله اصلا کتابی داریم تحت عنوان فرق و شیعه که برید 84 تا شیعه فقط فرق دارن حالا بقیه بله حال اینا بعد از منظرهای دیگه‌ای هم نگاه بشه و روش کار بشه که وقتی اوستا گفته که کیون اصلا خوسه انسانه خب این خیلی دیگه کار داره که تا ما می‌بینیم شاهنامه هم همون میگه و جای دیگه اثبات نظریه میگم پاپر میگه یک مورد نقد حتی یه مورد نقض کافی یعنی ما خیلی بعد دیگه اون چیز محکم باشه. برای مثال شما فرمودین که مثلا من اون سی سال کیوومرسو رو گفتم که گذشته گفته که پرو هم دقییان رو اون شماره سی تاکید میکنه که بگیتی در اون سال سی شاه بود اون سی رو پرسید کار شده بم مرس کم نخریر متاسفم همینطور که میگه ما هیچ روش رو هیچ چیزی تو ایران را تا حالا نداشتیم. نوع نگاه به اصل حالا باز خدا خیلی باقای فیروزی بده که البته خب ما با هم سالا کار کردیم میشنسم ایشون این نوع نگاه به شاهنامه رو دارن اصلا دانشگاه های ما که اصلا میگن آقا برو تو بخون با اصلا متاسد. به شاهنامه اینطوری نگاه میکن برای با آقای ایران وارد بحث اصلی هم نشین وقت برنامه هم تا رو به پایان هستش بله در مورد همین فرقه ها من خدمت دوستان بگم که کتابی وجود داره تحت فرهنگ فرق اسلامی آقای دکتر محمد جواد مشکور جمعاوریکرده 700 تا فرقه مثلا ناووسیه نه من همش نام داره بله. سلمانیه وجود داره و بعد هم حدود دو, دو سه سال گذشته جناب آقای سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی یه پژوهشی که قبلا مال مرحوم الله روحانی بود ادامه دادن تحتوان فرهنگ جامعه فرق اسلامی که سجل چاپ شد حدود 3500 فرقش یعنی تمام فرقه های هم مذهبی و هم ارفانی همه رو با هم دیگه جمع کردن و تو مذاهب معموله از این فرقه ها در واقع زیاد هستش شمندگان گرامی قسمت سی و شیشم ایران به جمعین جا به پایان میرسه شما رو تا آغاز قسمت سی هفتم به خداونده متعال میسپاریم خداییارو نگه دارت